والحمد لله رب العالمين و صل الله و سيدنا رسول الله و آله طیبین و طاهرین و معصومین و نبت دائمت و علی آدارت مجمعین اللهم افرنا و جمعی المشتردین و رحمنا و رحمتکی و رحمی از شد که به مناسبت بحث رشده آیان این آیه مبارکه یه و لا تأکل و اموالتون بینتون بالباطل و چود جعوبه هایلالحکام لتأکل و فریق من اموال الناس لعب و انتون تعلمون رو در مناسب رشوع بردن دیروز در وقتی بدشته خود این اجمالن گفته شد در واقع است و از هم گفتن در اموال ایتامه و از هم گفتن خوب در رشوع هست گفتن که اهم هست تمام این ها بیم مناسبت متعرضه تفسیر این آیه مبارکه شدیم و شباهاتی که در اینجا وارد شده از تا اینجا مثم اول آیه لا تأکل و اموال کن بین کن بلباطه پس این کلمه اموال با غین بین مراد مبادلاته از این مراد من از اموال با بین متعلقه به لا تاکلو چون بینم متعلقه است به لا تاکلو اموال با بین متعلق به تاکلو بشه لا تاکلو بشه مراد مبادلاته و اما اگر مراد یک طرفه باشه دیگه بین رو نیابردن لیگه در خود این آیه مبارکه بعدش نیابده تاکلو فریقا من اموال ناس نگو بینکم اول بینکم داشت دوبومی بینکم نداشت این توضیحاتی بودی بودش و مسئله یه و تودلو بها الالحکام از کردم در نقض در مصحف دوبه قبه ابنکم که ولا, ولا تودلو واب آمده از کردین این ایک سیاب است و شبیه این هم در لغت عرب هست لیکن در لغت عرب اون جه که الان دیدیم از ما وقتیش یواب به معنای جمعه مثل لاتن هن خلوهن و تأثیه مثلهو ای آرون علیه که اداته هم این لاتن هن خلوهن و تأثیه مثلهو ولذا هم در تحریر به مبنای زیره بطری ها یعنی من مثل لا تأکل سمک و تشربه لبن لبن که اینجا بانه اما اینجا ظاهرا مجزوم منصوب نیست ارز کردیم این در قرآن در همین سوره برره گاهی اوقات آگهی که میاد لا تکرار میشه گاهی نمیشه احتمالا یک نقطهی باشه همه عرفی بوده در اون زمان متعارف بوده و هم قرآن روی این نکته کار یعنی انایت لا تقون الله و رسول و تقون و امانات کن احتمالی که الان ابتداعند به ذهن میاد ولی علم و شاید ناظره به این باشه که این جزء همون قبلی قبلیه با اون جدا نیست اگر لا رو تکرار بکنه احتمال داره چیز دیگری باشه مثلا لا تأکل و اموالتون بینتون با... بل باطل و لا تود رو که همه همه یک حکم دیگریه اول یک حکم دوم یک حکم دیگریه لکن لا تکرار نشده به خاطر اینکه که میگه نه همونه مثل لا تخون الله بر رسول و تخون و امانات کن یعنی که همه اگه انسان خیانت در امانت کرد همون خیانت الله بر رسوله لا تکرار نمیشه اینه اگه تکرار بشه احتمالاً حکم دومی در میاد اگر منصوب باشه که واقع جمعه اگر منصوب باشه یا حالا مرفوع باشه که بسیاره نحی باشه یا نحی باشه اون وقت این به عبارت اخرى حکم دومی است اما در اینجا ظاهرن میخوام بگن که همون حکمه حکم دیگری نیست لاترکلو هموالکن بینکن بالباطل و مسئله چودلوب ها الالفکان این همون اكل مال به باطله اون آمش مش لا تاكلوا اموالكم بینکم به باطله جلب و تجلیش طلبوبه ها ال حکام کلمه حکام هم از کردین احتمالا ام از قاضی و حاکم باشه احتمالا خصوص قاضی باشه احتمال اینکه خصوص حاکم هم باشه یعنی سلطه اجرایی قوه تنفیذی به قوله. حربی یا قوه مجریه به اصطلاح حالکی ما احتمال داره که ناظر به همون قدرت اجرایی باشه خوبه مجریه باشه حاکم از در خود قرآن کریم این دو تا لفظ سابقاً از که هم در آیات و هم در روایات از این جهت مشکل سازن یکی قضای که حکمه چون جای به جای هم دیگه استعمال شدن چون قضا غالبا مال ترافع و خصومت بین طرف اینه غالبا حکمان مال حکومته اما گاهی اوقات قضا آمده من حکومت و بعض اصلاح حکمه آمده من قاضی الان مشهوره بین فقهای ما در زیل حدیث در حدیث عمر بنه هنزله فعنی جل توه ما در عمر بنه هنزله حاکمان آمده در همین مطلب در روایت به اصطلاح عبی خدیجه سالم مکرم فعنی قد و و قاضیان توی که قاضیان آمده توی که حاکمن آمده دفت می گفته شده که هر دو یکیه یعنی این قاضیان را شامل حاکم کردن حالفه را شامل قاضیان این دوتا لب این مشکل داره در خود قرآن هم همینطوره بعضی ها به معنی قضاوته مثلا فعلا جاؤکی جا و حکمونه که فهر بینها بین این تحکیم آمده و حکم معنی به معنای قضاوت است حکم به معنای کلی و مملکی من ازو منزل الله به معنای حکمرانی مثلا روایت معروفی در کتاب بزرگسال بخاری آمده ان الحاکم اذا اشهد فعصاب بده اجر از ابو موسی اشعری ان رسول الله این سندی در بخاری و ان اخطئ فله اجر واحد اونجا تعبیر حاکم آمده تصادفن اذا شهد الحاکم فعلا این بلا اجران و ان اخطئ فلهو اجر الواه اونجا تعبیر به حاکم آمده که احتمالا مراد صحیح باشه مراد به حاکم حکومت باشه احکام ولایی باشه به احتمالا شامل و بازی هم بشه این من اون روز عرض کردم که ابهام داره البته همون قایقی که اون روز فهمیدم در یه روایت داره که حضرت رضا فرمودن حکام در اینجا معنی قضات این روایت به تنهایی اگر همین مقدار هم بود دلالت میکنه بر تفسیر آیه مبارکه بود. چون روزه ارز کردم ما تونجهی که من در تفسیر آیه پیجی نقل نشده این روایت هست تصادفا. حالا تو مجموعه باید نهیم تو برهان نه برده و این روایت هست حالا آیه نه بردن ایک اشتباهی پیچ آمده حالا حالا به خاطر بعضی از فواهدی که در این جهد هست که ببینی این لاتو دوبه ها ایلالحکام و تو دوبه ها ایلالحکام شامل رشته میشه یا نه این در کتاب وسائل همین جلد هیجده که امروز حضرت شمیم از صفحه پنج از جلد هیجده چاف مرحوم آیه ربانی برازم در این چاف جای جلد بیسته هفت نیست در این جای جلد میشه در اینجا صفحه پنج به حسب عبواب عبواب صفات القاضی باب اولش همون جزء احادیث اول کتابه محروم سال وسائل و به اسنادی هی زمیر به شیخ توسی برمیره حدیث شماره نه، و به اسنادی هی محروم شیخ توسی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ها ایشان کتابی داشته به نام نوازور حکمه کتاب بزرگی بوده کتاب‌های معروف قومه در قوم خیلی نقش داشته این کتاب اما خود ایشان متصاحله در این که ایشان نزد بزرگواری است و قرد جای بحث نیست لکن در نقل حدیث اینها تساهل داره من کلا هر کاری کردم علاوه بر اون عباراتی که نجوش و دیگران دارن خود من هر وقت یک عبارتی روایتی رو منان منتهی اول از محمد بن احتمال میدم بعد از احمد یا مثلا چیزی رو که علای اله به لحاظ گرانقدر خندگیشون به بحث میشه که ظاهرا دقیق نبوده و بحث نلشه و نه لزوما به لحاظ ارزش خود کتاب از نظر ای به نظر نظرم در رده های مثلا سوم و چهارم یا دوم و سوم چیزه کتاب های درجه یک ما نیست اما فوقل ال... فوقل از کتاب در قوم مشهور میده سبب و سیاق کتاب هم هنوز برای ما روشن نیست نشون میدهی که کتاب جمعه گذینیشی نداشته این چون این بحث ها الان تا حالا در مسادر ما نشده من یکی دستش اشاره بکنم که آن کار بکنم اصلا کتاب حسین سعید به احتمال اخری گذینیشی بود مثل کتاب کافی هرز کردن من در این کتاب چون الان هم کتاب بیش ما موجوده راحت فکر میکنیم کتاب سابرین الان نمیتونی به حسین فکر مثلا کتاب کافی گذینشیه اشان احاضی که قبول کرده و، کتاب خقیل هم گذینشیه اما تحضیب به گذینشی نیست اشتباه نشید چیز هم اوزه ده باته کرده کتاب نوازه رو به ذهن میاد البته ما در میان خودمای از خواب ما نوازه یاد داریم نصبیتا حضر محسن بالای زهده آزشون مثلا از که هرکم و دیگه شونزد یا چارزه دو شونزد اما احتمالا میشه هم باشه لکن در تمام اینها، تنها یک کتاب هست نواده را شکم هست نواده ممانه نادر هست اما ممکنه نادر ممانه باشه نادر همینی ضعیف باشه هر دوش احتماله اون اخترازی به لفظ باشه اضعیه صحبت میکنه و از کرید که در کتاب مرحوم نجاشی اضافه بر این کلمه نواغر یک تکراری داره نجاشی. یعنی هم نواغر، یه نواغر بدون علتنا. حتی در این شرح ها هر دو ورده. نه شام نواغر و نه کتاب نواغر بدون علتنا. با این توضیحات خاصی داره که جایش اینه ببینید شما یک فرصت دیگه‌ای واسه ارش اشاره شد. مطلبش رو بیان بکنید. علایوهاله این نکته رو عرض می‌خوره. که در مجموعه روایبی که ما به اسم نوازر داریم چون این ش هست که بعضی از نوازار برهای شروعن خود معلف دارشه. ثر تو وقتی تاریخی و از کتاب شناسی زیاد نیست که مترسانهنا در بوزه های معان رایش نیست احتیاج به شهر تمام گش اینجا نیست نمیخوام آ برثش. تنها یک کتاب نوازار فکرسان این مشترک نیست یک کتاب یک نفر و اونم محمد میگه مظض یریال، ارز کردن ایشون اصطلاحاً اصطلاحا اون روان کنه عرب ها یا, یا در واقع اشاعره اینا اشاعره ایشون جوزه اشاعره ها یکم به اصطلاح از ارز ها ارز ها ولو زمان حضرت تقریبا معاصل زمان ایشان به قوم آمدن لکن از زمان امام صادق مدینه آمدن برای نقل حدیث ما از قدیم تریشون که خرابین از امام صادق سلام الله چون عرب بودن ی عقب ذنی آمد موی تو بدنش شد اشعر اسمش شد این اشعر خوانده میشه اسمش وهول اشعرذا اون جدها به نظرم به باشد تاثیر اینا در یمن به این معنا چون جدشون مودار بود بدنش خیلی مودار اشعر اسمش جور که ابو موسی اشعری مثلا این خانواده از فامیلایشون میه ازن اشعری یمن نیست که به مکه کرده و لیکن اشاعره به خاطر اینکه لغت زبانشون عربی بود نقش بسیار بزرگی در قوم داشتن در نقل احادیث اهل بیت از کار هم حدیث خوب نقل کرده از اهل بیت و هم بعضها بزرگان حدیث و حدیث شناس های بزرگشون که گزینشی بودن مثل احمد اشعری اینا من همین اشاعرم تا اونجایی که من احتمال میدم درمیم چون کسی متعرض نشده کتاب هم فعلا موجود نیست. به نظر این کتاب گزینشی نبوده. به نظرم میاد نظر کتاب همه جور شارد جمع کرده تحت عناوین مختلف. الان کتاب نمادول هشمه کتاب معروفی بوده و خیلی محلیه شناخته بوده. اکثر این کتاب پیش هر نسخه بزرگوار هم موجود بوده، هم کلنگی و هم صدور و هم شیخه توسی و اج اجرای این اشگاه وقت هر سه از این کتاب نامرا نغواشون هم مختلفه. اینو خیلی در حدیه. کتاب نوثی کتاب یکی از عجایب کاره این حدیث رو منفردن شیخ توصی نرم کرده. که وقتی انفراد میاد احتمالا این اشکالی هم در ذهن این دوزنوار یعنی کلینی و صدوق بوده با اینکه این کتاب و این محصر در خیال بوده و صدوق اونها نرمه کردن منحصرن مرحوم شیخ توصی رضوان الله تعالی علیه از کتاب نوادر الحکم خن محمد ابن ایسا محمد ننگستا در اینجا همون جناب آی به اصطلاحته احتمال هم داره که اشتباه شده باشه مثلا احمد بن محمد نگیستا بن باشه احتمال چه از این کتاب میاد ما خقوم می ها یک اوقال اون جب میگن یه شوخی برای کتاب میکردن اسم این درده شبیه شبیه یه بقال او میخواست در تسوک میگن به فارسی یک دقی داشت هرچی میخوااصی ا پیاز پاز میخوااستی میخواست فلتر ضریبه می ترشی همه از هم اونجا میداد اسم این کتاب در به شبیه بنام بقالی در بود علایه حاله احتمال داره که احمد بن محمد بن ایسا باشه نه که احتمال نیست برحال فعلا اسم محمد بن ایسا بست اسمی که الان موجوده محمد بن ایسا که اندل اطلاق محمد ابن ایسا ارز کردیم برمیگرده به محمد بن ایسا یقینی خود ایشان مرد است. ایشون ظاهرا به با محمد هم. ظاهرن و به ایران کنن آمدن حالا یک شبی داره که چون نمو خواهد این روزو تاریخی بشن و مقدار زیادی از مسادر بغدار، کوفه اینا ایشون اولا نغره کردن احتمالی که الان به ظاهر تند نگاه میکنیم محمد بن ایساست هنر حسن ابن از این محمد بن ایسا که سربرادر علیه ابن یختین معروفه این علیه ابن حسین که رو یقین خودش از دعوات بنی عباس، اصل زندگیشو گذاشت در راه بنی عباس و به حکومت اثر موها، حتی زن بچه‌ش میل کرد رفت به طرف خراسان عمرو ابومسلم در جنگ‌ها شرکت کرد برای حمایت از بنی عباس. لكن بچه‌هاش اذه با اهل بیت بودن، مخالف هست ایران. یکی‌شون هم علی ابن یقین معروف که آخرش هم شهید شد دست هارون الرشید. و وصایتی که داشت یکی هم عبید ابن یختینه اون عبید جده این محمد ابن ایساست محمد ابن ایسا ابن عبید پس ایشون نقیه برادر علی ابن یختین محروفه ارض کردم بیشون در لساقت و جلالت جای بحثی نیست وقتی که قوم آمده ادهی از مسادر رو برای قومی نقل کرد قومی ها در ادهی از مسادر رو بشک کردن یه شهر سیدانه جایه جاهای بسیار مغلقه به اصطلاح حدیث شیعه یک شرحه چونانه داره که من را نمیخوام باید این بحث بشن اومیه ها و به خصوص مرحوم ابن الولی ابن الولی در این که این مطالب درست باشه به به آبهایی رو که ایشون نقل میکنه این کتاب ها به طبقه ایشون نمیخوره اسنادش منقطه حالا این یعنی ایک شرحه هستم که چولانده این قسمت محم اینکه رجاوین ما ماوسیم غیر مواسم زیاد نوشتن، خیلی مطالب نقضی شده که روشن نیست. که جناب توضیحات خیلی فراوان بدید. ولی بی یک جلسه درست به در اختیار تام نمی شه. همین مقدار مختصر اکتفا اما البته یه مشکل ظاهری این بوده که سن نشینه نمی‌خورد. احتمالا سنش مناسب نبود. مثلاً تا مثل احتمال داره که ما از حسن علی نقد نکنه. همینجوری که جلسه حسن علی فضا اشکال داشتن ابن الولید میگفته که این اسناد منتقعه این به اسناد منتقعه که مرادش این چیه مرادش اینه که اگر میگه عن فلان این از اون آگاه درک نکرده از کتابش نه رجاله نقل می این این چون مخفی شده چون طبقهش نمیخوره این من توضیحاتش رو چند بار توی بحث‌های اخیرم عرض در ذهنیت علمای حدیث این بود که هنه هنه مصابقه با اتصاله مصابیه با اتصاله یعنی اگر گفت عمل حسین علیه نفرزار یعنی از او گرفته یا اجازه گرفته یا سماه بوده یا مراعت بوده معروف حرف نحوه انها اتحمل حدیث بوده اون ذریفتر از همش که به خودشون هفته, هفته به نحوه وجاده یعنی وجد توپی کتابه اینا قومی ها اشار که این اون کتاب رو نرمه کرده اصنا بلا اون تحبیر دهند میکنه این البته این محل کلام شد یعنی این کلام ابن الولی اینطور نبود که مرد قبول بشه خود مثلا مرزوم کلینی جزو مخالفینه کلینی نهبون میکنه زمین اون روهایی که قومی ها اشکال داشتن نهبون میکنه مثلا ابن نوح استاد نجاشی که واقعا نقاد حدیث از بزرگان حدیث ایشون میگه نه ما اشکال ابن الولی قبول نداریم اون علی محمد بن عیسیا مرد بزرگواری فقط یعنی درک کرده حالا تاریخش رو می‌خوری حتما یه نحو دیگر بوده من توضیحی دادم سالانه گانیوهات بزرگا اصلا این تو زمان محمد بن عیسیا شده یا نه نمی‌دونم اما قطعاً بعد شده یعنی قرن 4ام شده مثلا پیرمردی بوده از بزرگان مراکز بزرگ عمر 60 سال 90 سال یک شاگردی داشته بچه‌ای در نغی برایش دنیا اومد یک ساله اون مرد 80 ساله اجازه داده برای این بچه یک ساله. این رسم بوده. اجازه دادن برای بچه کوچیک. رساله رسالهی رساله ابو غالب که خوشی در زمانه. این رساله رو ایشون اجازه میده به نوبه خودش که دو ساله بوده. خودش میگه به نوبه خودش که کتاب‌ها رو اجازه بده. این بوده. لذا مرحوم ابن ابن میگفته شما نمی‌بینید سالش هم خب چون محمد که من گفتم چون از خاندان معروفی بودن خاندان یفتین در بغداد استمان داره بچه بوده داشت اجازه دارن این خلاصه بحث این خیلی بحث طولانی داره من خیلی موجه از برای شما حد کردم چون این قطعه نیست چون اجازه رو قبول می کردن اجازه قرار نمی دادن حتی اجازه اینجوری حتی اجازه اینجوری ای یه اجازه نبود دیگه چون اجازه جدو طرق تحمل حدیس بود و قبولش داشتن. سمه بود، قرائت بود اجازه بود مناقله بود وصیت بود کتاب ال اخر من تحمل حدیث این حضرت انهار حدیث بشن این وجاده نیست به حالا حالا ارزش این باشه ندارم بحث است. این اجازه است بذات فرض پس محمد ابن عیسی در اینجا ظاهرا یختنی باشه من میگم ظاهرا چون الان موجوده چون به این کتاب خیلی خوش عریبه نیست معتقدم توی سرف و اینو داره احتوال. چون احمد اشعری احمد بن محمد بن عیسی مسلما یکی از رواات معروف کتاب ابن فضل الله ایشون به بغداد به قم به کوفه آمده و قطعاً که از رواات معروف اون درش یه جای بحث نده انا الخسره نعلی بن من الان خیلی مطلب رو موجز دارم صحبت میکنم تمام این کلمات ما خودش هر کدومش یک جلسه جرش میشه چون خیلی اشتباهات در اینجا پیدا شده که احمد با محمد بن اشتباه شده من میخوام در شرییدم خیلی طولانی و خیلی هم اثر نداره انره اثره نریه ابن فزال این ابن فزال پدری که جز شخصیت های بسیار معروف کوفه بوده و توضیحات جاز کردیم حتی گفته شده که ایشون از فتحییت دست برداشته باкин خب بچه هاش مصر بودن که نه ما فطقی بوده ایدهی از فطریات مصر بودن که ایشون تا آخر کرده یک بحثم راجبینه که ایشون برگشتی و برنگشتی قال قرعت و فی کتاب اول حسد این اول حسد رو طبیعتاً نمیشناسی لکن در اصحاب امام کاظم و امام وزا از شخص نام عبال حسد داماد خطن تحبیل شده داماد علی بن یخی نام برده شده احتمال اون باشه احتمالش هست الا عبال حسد ثانی طبعاً فتحیه بعض رضا و حضرت موسیقی جفر اعتقاد نداشتن بعضیشون میگن اعتقاد داشتن چون یک ابهامی وجود داره چون عبدالله هفته یک هفته دو برز امام ساده زنده بود میگن بعضی از فتحیه برگشتن به امام کازم بعضیشون نه موندن این جهتی که فتحیه برچی کار کردن این که می امام داره قرار توفی کتاب ابل اصد الا ابل حسن الثانی که مراد حضرت رضا. اول حسن اول در روایات ما موسیر جعفر اول حسن اول در تاریخ و سیره احمد المومنینه اول حسن ثانی در تاریخ و سیره حضرت سجاده بن حسین اما در روایات ما اول حسن اول موسیرونه افتاد استبال نشه این دوتا استلاهایه اکستلاهای روایات بریم استلاهای تاریخ و سیره دانیم اول حسن ثانی هم حضرت رزا اول حسن ثالث هم حضرت حادیثه مجمعیم قرآتو فی کتاب ابل اسس الا ابل حسن الثانی و به بخطه ببینید اول گفت قرآتو باز داره و قرآتو به ارض از کنم من هر وقت روایتی رو از کتاب محمد می بینم احتمال اشی دم اشید مرمومه صاب یک فکره حالا همین روایت الان ما در مستر دیگه ما نیامده در کتاب عیاشی آمده سال سالم استخراج نکرد در اینجا از عیاشی نکرد این روایت در تفسیر عیاشی آمده البته تفسیر عیاشی می‌دونه الان کلا مرسله یعنی ایشون از عیاشی از حسن علی نعرین نرسیده عیاشی که الان موجوده آخر سند حسن علی در اینجا این طور داره به جای و قراته او دوم که حسین قراته او این جور داره و او یعنی با اینکه خود تفسیر عیاشی یه تفسیرید که درست و سهی و, صحیح و صحیح به ما نرسیده چون از کردن خود عیاشی امولا در ذهن باشه چون در قدود سمرغن بوده در حوزه های علمی نبوده خود عیاشی محمد ابن مسعود در حوزه های ما نبوده آثار او به حوزهای های ما ترسود پسرش آمده جعفرم محمد ابن مسعود ایشون آثار پدر رو آوردن برداد و الله خود ایشان در حوزه های ما نبوده بله ایشان به حوزه های مهم شیعه ترکیشی کرده یعنی ایشون از تمغن به آمده به بغداد آمده به کوفه آمده و از مشاعق خیلی معروف هم نرسده غیر معروف هم نرسده فوق آده است ایاشی در جمع احادی سحل بیر فوق آده است حیف که آثار ایشان به ما نرسیده حیف متعصد آثار این بزرگوار، ایشون اصالترم سنی بوده بعد مستفسر شده و از پدر خودش یک میلیون و سی ست هزار درهم پول دار بوده ارس برده تمام و سرط کتابها ها مسادر شیعه کرده. لذا خانه او در در با منوان مثل یک کتاب کنن مثل انتشاراتی ما بین ناسخن و خاره کتاب تصیمی کردن میخوندن تکریبی می کردن مرکزی بوده تمام این مال رو سرط احیار اتراس کرده از کردن ارس با تمام این, که این کتاب الان به سازه ناقه سیو مرسیده شرحی که الان به دست ما نصف کتابه این نسخه ایه که در دست ما رسیده اون ناسه کتاب سندار هست داده عیاشی سر داشته ناصه کتاب سندار حذف کرده لذا نص در حذف شده گفت بقوله معروف پسون قاطر شده با تمام این حرفا در همین کتاب عیاشی با این وضعی که داره انصافا در خیلی از جو داریم که در هیچ مصدر ما موجود نیست وگاهی حدیث واحد رو با سه متن میاره که در مسادر ما موجود نیست با این تکستان مردی موجود نیست این راجع به کتاب ایاشی و خواهد این کتابی شده با دیگر صحبت بشه جاش اینجا دید. و ایاشی من جمله پسر این حسن رو در کرده اینه ایاشی در سفری که به کوف آمده علی بن حسن رو دیده پسر ابن فرزان که پسر معروف ابن فرزان ابن فرزان پسر مفاد اینه الان در کتاب این رواه در کتاب تهذیب اومده حالا بین علما معروف تهذیب و کتب اربعه است از این کتب هستشین اما همین روایت در کتاب عیاشی با ارصادی که الان داره اسم اون سر بوده اما متن عیاشی از متن تهذیب بهتره چون در متن تهذیب اینجوری قرعه تو فیکتاب عدل اسد و قرعتو به خصه اما در کتاب عیاشی داره قرعه کتاب فیکتاب عدل اسد و جوابو به جای خرارتوی جمعه احتمالا در همین نوازر احمد این که با شده احتمالا ببینه ها کجا شده های خب این راجعه به مذ... این حدیث و از کردیم کناره و مراره در این یور روایات ما زیاد داریم این روایات یه شر می شد در زیاده خود می زده بررسی کرد. مثلا اینجا میگن ادال اسد نمیشناسیم چون داده دوالت مثل ذئی در مواقعی که اول اصل مشکل از خلیم آن این روابطی که جنبه استفتاد و سوال داره ممکن است افراد نشناسیم این ارزش نداره چیزی دینی خب الان آن که در بیوژ و هستن هسته شد برای روزانه هزارها تلفات استفتاد میشه آخه دینی میشناسه کدوم دامن میشناسه کسی گفته میشناسه تریات استفتاد اینطوره یعنی مشکل نداره که نشناسیم بکن راه برای اینکه اونها رو ارزش بدی اون کسانی است که درو کردن و کسانی که نبود مثلا اینجا اگر ثابت باشی که ابن فضل پدر که واقعا فوق العاده در حدیث روزعتاب شما ذکر شده و واقعا فوق است انصافا فوق العاده خیلی حدیثش نقیه بسیار نقیه انصافا که هم هست علم فضل پدر نه صرفه که من خوندم با خط امام ارزشش مال اینه نه مال ابوالعشد نه مال بحث رجالی باش نکنه ابو الاسد معلومه مشغول بخوب نمیشوده قاطعا نمیشناسه یعنی این چیز تازه نیست این به طور طبیعی این استفتاءات مخصوصا استفتاءاتی که محمد بن زیاد نقل میکنه کسی که محمد بن یساء در کتاب دارجل نیامده به نظر من تو ایران گشته استفتاءاتی که افراد به امام هادی نمیشن جمع کرده که کتابی هم به نام اسئله رجال مسائل الرجال اله حسن الحسن الثالث ابو اینو جمع آوری کرده اونورا نمیشناسه ف آب نمیگردم ایشون آره. نمیشدی. اون بنزر ما ارزش نداره خوب دخترو کنید در ارزیابی روشن بله. شد ارزش آب استفاده کردی یا دیو استفاده شکری میکنه وقت تابیه من بله استفاده کردی یا شکری شد منجش نه هست بنزر چون راهی نبودیم دیگه فقط هم. اگر اول سر گفته سعیشو اول هستن فقط بالا مشکل داری. اما وقتی ابن پازدال اگر راست باشه ازت میگم اگر اگر راست باشه ابن فضا وقت مثلا بگیم ابن فضا شخصیت بزرگ چون بعد اون بگیم به او اقدام میکنه که جواب به خط خود امامه به خط بکنی اونی که بره ارزش میده اون طبقه بعضی که به اون کاتب نگاه نکنید چون اون شما رو به جهنی نیرسید سه عله وان ما تفسیر و قولیه که آلا ولا تأکل و بالباطل و تو لوبه ها علال فکت به ذختره کلمی به خطره در کتاب تحریف آمده اما در کتاب عیاشی فکت به الیه این که من گنجای با توی نسخه نازی ماهن کار و کوی مال هم قله الهو... فکت به ذختره قلم قوزات از دو مورد از حکام در اینجا حاضره نه به سخوی مشری سوم فکت به ثبت او این خیلی عبارات ذیلش مغلقه یعنی ما واقعا سردر نمیاریم دقیقا دلیل کلام امام اینقدر مغلق باشه و راوی داشته علم فزار عبارت اینه هو ان یعلم الرجل ظاهرا ان هو ظالمون فیهکم له القاضی فهو غیر و معذور فی اخذه ذانک الذي قد حکم له اگر کنه قدر علیمه اند، او ظالمه. این وقت، این مبهمه. اون وقت در کتاب مرحوم عیاشی این فیحکم الله القاضی اصلا نیست، این جمله کلی نیست. نمیفهمم از من، که کی سرلامه بودم، اول نگشتم مطالعه کردم فکر کنم شاید چیزی پیدا بشه. اگر این متن برس باشه ممکن است این یوں خونده بشه ممکن است از میگم هو ان یعلم الرجل یعلم به صیغه مشهور بخونید به معنای یعرف انذرا ادبی تحلیل کلام مرد معروف باشه مراد از رجل در اینجا قاضی نباشه شما اول چیزی که خوندیم هو ان یعلم الرجل این اگر اینجور بخونی با رجل قاضی باشه باب به با فیضمون عرقازی نمیخوره. هو و انجو علامر رجوله، این خونده بشه. یعنی هو و انجو آراخر این, این مرد شناخته شده باشه. آن نه و هم به فکر همزد خونی بدده از عرجول بگیریم. یعنی یو آراخر رجوله. آن نه و زالمان. که طبع ایشی را آسی. یعنی مردی معلوم باشه یعلم به این مردی معلوم باشه که ظالمه خوب دقل حالا اگر اینجور خونی فیه کم القاضی جودر میاد مشکل نداره قاضی برای این کسی که معلومه ببینید نمو خواهد قاضی میدونه اصلا این معروفه این معلومه که ظالمه خوب دقل کردیم خواه انی یعلم الرجلو انهو نظر شما بگم اگر نه رو به فته بکنید بدل از الرجل یعنی هو ان یعرف انه ظالم بدل این معنا هو ان یعرف علمان رجل انه ظالمون عاصی فیه له القاضی مع ازال با اینکه معلومه که این ظالمه ببین با اینکه معلومه قاضی به نفع او حکم میکنه فهو غیر معذور این قاضی معذور نیست فی اخزهی در اینکه بگیره رال کلدی اینجا در کتاب تحضیب قد قد اوورده قد مهمه نمیده خیلی اینجا در کتاب عیاشی اوورده بهی به, به جای خد بهی اوورده به نظر هم هر به ایاشی نورده بازم عیاشی ایاشی نورده فهوه غیر و معذوره فی اخزهی رال کلدی بهی له این بهی باز باشه نه قد حالا شاد محمد النحمد نصر رو بست مونده بهی رو مونده احتمال داره شاید نصاخ باید نوشته مالا میوید حالا فاقوه غیر و محضوره فی اخزیه ذالکاللزی بهی حکمله روشن شد به نظر من این روشن میشه عبارت ابحامش برداشته میشه آه. به این پول به بهی حکمله به این پول نه حکمالا قد حکمله قد حکمله که من روزیم این خوب دقت شد تحریقی این تعمال خیلی مطلب که دقیق شد مثلا الان تو ذهن مردم معروف است این تو دو بوزه ما همونم مردم آمی که کتاب <تصح> تحریر و کتاب عربه است و اصحه کتاب است تحریر ایاشی دقیق دوسته است و مرسل است, و است. همین جا همین تفسیر عیاشی مطلش تا اینجا که خوندید بهتر از این کتاب تحریر اشکال به تحریر نیست اشتباه نشه تحضیح روز و و ایاشی در کتابهاش این یکی خصوصا مشقور از شیخ میلاد ارشاد شیخ طوسی اجل و شعلان از عیاشی در حوزه های ما بوده کتاب هاش مشی بحث مالبنجن. اما این بحث به این مقدار نیست ببینید مرحوم شیخ طوسی از کجا گرفته شیخ طوسی از کتاب نوادر فکرت گرفته از نوادر فکرت هم یعنی به عبارت اونرا ایشون برای این کتاب اون سیر تاریخی و همیشه در ذهنش باشه کتاب این حدیث الا تدبیر صدوره در کوفه ابن فضل نقل کرده توسط محمد بن ایسا به قوم آمده شیخ توسی هم از را از بغداد به قوم. از راه هم مسادر قوم گرفته تفرک کردیم شیخ توسی کار خاصی انجام نده یعنی خود هده که ایشون تصرف کرده. به نظر من اینی که بعضیات تصور میکنه که مثلا شیخ توسی با این کارش حدیث مشبه کرده. با اون متن بهی بهتره یا قراتهو و جوابهو بهتره قبول داریم بهتره اما شیخ توسی به خاطر جلالت قدرش تصرف تو حدیث نکرده همونطور که تو محضر بوده نقل کرده ما ما نباید نگاه به شیخ بکنیم نگاه به تا محضر بکنیم در کتاب نوادر حکم حدیث اینجوری آمده که براتون خوندی خوندیم که شیخ رو همین حدیث در کتاب عیاشی با تقییباتی آمده عیاشی هم افتدا کرده به اسم حسن گف شایلا مستقیم از کتاب ابن فضال گرفته اگر مستقیم از کتاب ابن فضال گرفته بشه نقل ایاشی تا اینجا بهتره با این که دردیم باید باید باید برد غیر و معذوره پس این قاضی معذور نیست فی اخذی هی الذي بیهی حکمله روچند شد؟ خاطری انصافا خیلی روچنده فی اخذی لگه این که قاضی بگیره، اخذیه اضافه به فائل کده لالکه محولشه اخذیه محضر اضافه فائل فی اخذیه لالکه لذیه حکم حکمله اذا کان قد علمه انه هو ظالمون و این علمه اینجا رو به فیقه معلوم بخونید اون اولی یعنی این معروف معروفه که ظالمه میگه غیر از معروفیت اگر قاضی هم میدانه این ظالمه این پولی که گرفته حرامه این تنها حدیثی که ما فیلن پیدا کردیم در تفسیر این آیه مبارکه تا اینجا تا اینجا در این دو خیمه آیه مبارکه لا ترکل و اموالت رو بینکن به باطل و تدروبه ها الالفوکا سند حدیث و حساب نوازات نکمه خوبه مشکل نداره سند حدیث سنده طور قبوله از کلمان عباله حساب هم مجبور باشه, باشه. اگه دامان یخیمیان باشه باز خودش موانواد تاریخی هم دارش. و این شناخته میشه اجماله بازم تحصیل شد باید نده برها این جای مطلبی رو که من ارز کردم انصافاً روایت بد نیست خواهد قبوله و یک این طباغ بر رشته داده مثل مورد روایت خیلی واضحه مورد روایت ابارت از موردیست که خواهدی پولی رو میگیره میدونه شرط بر حق نیست ظالمه به نفع او حکم میکنه ولی چرا من غیر را, را میکنم؟ چون اگه یاد آقایین باشیم از اول گفتیم از همون ز... توی متون حدیثی ما حدیثی اهل سنت از همون زمان صحابه هم از عمر و از علیه از کردیم غیر از رشته. یک عنوان دیگر بود پول ببینیم که قاضی حکم بکنه او چقدر خطا دوم هدیه با قاضی این از رشته. این هم کلوبات تو امر اهل سنت یه توضیح هم سابقا دارید که اینم واقعا یه عجیبه یک مطلبی رو که آقا ما مام به این از علیه بن عبیر تعال اصلا در جزء متونی که علی روزن کتاب چیز رو نمی‌وزن کتاب تفسیر قرطبی تو تفسیر قرطبی هم علی بن علی ظاهرا علی رگشتو نکرده مش که موارد سهر رو یکی رشته قرار داده که استعجال للقاضی استعجال استعجال نکن ولی استعجال جیم برسته این استجعال این اجره جعل الجول استجعال للخاضی یعنی جول قرار دادن یعنی اجرت قرار دادن پس ما اون این روایت مبارکه نکته روشن شد ان این روایت مبارکه میگه آیه ناظر بر اشرا یعنی اون استجعال دیگه داخل نمیشه هم داخل نمیشه کل هدیه عمره غلولو یا هدیه عمره سقطان یا هدایل عمان ما هم داریم عمره این پیش ما نمونده این که اهل سنت گفتن مشهور اهل سنت هم نیست بحثش سابقا ارزش کردیم نقد کردن ما که این پی واقعه گرفتن نه به طور کلی توضیحش سابقا گذشت پس با در دقت بکنید طبق این روایت که تفسیر آیه مبارک است این آیه مبارک ناظر است به و در واقع تا اینجا دو فقره آیه مباده که برسی شد میمونه لطه و من هنبال ناس